اسکوگ جوان و فرهنگ به نام خالق شب افسانه آن یگانه بی همتا سلام و درود بر شما دوستان خوب است ان در صورت هر ای خورد بینان راز معنای سعی در میان انواع مختلف ادبیات آمیانه افسانه ها و قصه ها راه دراز زمان ها رو سینه به سینه مردمان تا به زمانه ما پیمودن از هر دوره و زمان یادی و نشانی و پیامی به همراه دارن و امروزه با کولباری گرانبها از میراث زنده فرهنگی در سینه های سال جهان پیش روی ما قرار دارن حفظ و سبت و زبط این ها و قصه های آمیانه امری ضروریه در برمی امشب هزار افسان به سرزمین ایتالیا سفر می کنیم و افثانه ای رو از مردمان این سرزمین براتون نقل می کنن به نام افسانی راز گل روز برگرفت از کتاب افسان های مردمی ایتالیا به گردآوری آن مک‌دونل، با ترجمه از رزوان خرمیان. روزی روزگاری در سرزمین ایتالیا پادشاهی زندگی میکرد که زمان مرگش فرا رسیده بود بنابراین تنها پسرش رو صدا زده گفت آه پسرم عمر من به آخر رسیده از تو یه خواهش دارم پسر به تندی گفت چه خواهشه پدر هرچی باشه میدم به اون عمل کنم پادشاه گفت پسرم، پسرم، مراقب خواهرانت باش اونا، اونا به جست کسی رو ندارن با اونا مهربون باش و وقتی به سن ازدواج رسیدن لازم نیست از همه شاهزاده های دیگه بخوای به اینجا بیان تا خواهرات از بین اونا همسر برای خودشون انتخاب کنن پسر با تعجب پرسید پس بدر باید چیکار کنم؟ پادشاه گفت اون بودت گل روزی که توی حیات قصره میبینی اون بوده اون در تمام سال گل میده یه گل از اون رو بچین و توی خیابون بنداز اولین مردی که گل رو برداشت باید بزرگترین خواهرت اون رو به همسری بپذیره در مورد خواهر دوم و سوم هم همین کار رو انجام بده و این آخرین وصیت پادشاه بود که بعد از گفتن اون از دنیا رفت خواهر اول شاهزاده زیبا شد وزیران دربار گفتند وقت ازدواج شاهزاده خانم رسیده و پادشاه جوان باید وسیعت پدر رو به خواهر بزرگ بگه برادر وسیعت پدر رو برای خواهر بزرگش گفت ولی خواهر بزرگتر قبول نکرد و گفت من من ترجیح میدم اصلا ازدواج نکنم اما برادر تاکید کرد که باید به وصیت پدر عمل کنه تا روح پدرشون شاد بشه بالاخره دختر پذیرفت و پادشاه جوان گل روزی چید و اون رو توی خیابون انداخت و به نگهبان جلوی در قصر فرمان داد که چشم از گل بر نداره و اولین کسی رو که گل رو برداشت به قصر بیاره کمی بعد جوونی با لباسهاگ گرم قیمت و شمشیری از طلا با چهره شاداب از اونجا رد شد و تا گل روز رو دید خم شد و اون رو از روی زمین برداشت و به کلاهش کرد. نگهبان که چارچشمی مواظب بود فوراً به دنبال جوون دوید و گفت ها، ها، پادشاه پادشاه شما رو به قصد دعوت کرده لطفا به دنبال من بیاین جوون که از این دعوت خیلی خوشحال شده بود با قدم ها و شتابان به دنبال نگهبان قصد افتاد وقتی وارد قصد شد پادشاه جوون اونو کرد و گفت شما برای همسری بزرگترین خواهر من انتخاب شدید آیا حاضر به این ازدواج هستید؟ جوون که انتظار شنیدن این پیشنهاد رو نوش با هیجان خوشحالی گفت قربان البته البته که حاضرم این باعث افتخار منه که خواهر شما به همسری من در بیاد این لطف بزرگی قربان که شما در حق من کردید اما شاهزاده خانم از این ازدواج چندان راضی نبود و می گفت من من شاهزادم و باید باید با شاهزاده ازدواج کنم برادرش گفت خواهر جان سخت نگیر این جوون هم خوش خیاف است و هم شجا و شاداب فراموش نکن که ما باید به وسیعت پدرمون عمل کنیم دختر فکری کرد و با خودش گفت این جوون چندان هم بد نیست. از این بدتر هم ممکن بود اتفاق بیفته. و بعد، به ازدواج با مرد جوون رضایت داد و جشن عروسی اولین دختر پادشاه برگزار شد. عدتی گذشت و زمان ازدواج شاهزادی دوم رسید اون هم مثل خواهر بزرگترش دلشت نمیخواست به این روش ازدواج کنه و دوست داشت شاهزادی زیبا به خواستگاریش بیاد اما برادرش از اون خواست که رضایت بده و به وصیت پدر احترام بذاره بنابراین این بار هم برادر به حیات قص رفت و روزی رو چید و اون را توی خیابون انداخت و به نگهبان گفت که مواظب باشه تا ببینی این دفعه چه کسی گل رو از روی زمین بر داره. بله این بار تاجر مغرور، ثروتمند و محترمی از اونجا گذشت با دیدن گل روز با مهربونی گل رو از روی زمین برداشت اونو بو کرد و با سلیقه در جادکمه جلیقه زیباش گذاشت. نگهبان غصر بهش نزدیک شد و پیغام پادشاه جوان رو به اون رسند تاجر جواب داد چه سعادتی بالاتر از این، حتماً چشم، با کمال افتخار میام خدمت پادشاه جوان و بدون معطلی به حضور پادشاه جوان رفت و بعد از تعظیم با حیجان گفت قبله عالم به سلامت، من در خدمت شما هستم، امر بفرمایید پادشاه جوان گفت تو باید به همسری خواهر دوم من در بیایی، آیا از این وصلت رضایت داری؟ مرد تاجر با هیجان جواب داد البته البته که حاضرم قربان ولی ولی پادشاه جوان گفت ولی چه مرد تاجر گفت قربان من اشرافزاده نیستم شاهزاده خانم باید با مردی عالی رتبه تر از من ازدواج کنه من فقط یه تاجره پادشاه جوان به تندی رو قطع کرد و گفت مهم نیست، اصلاً مهم نیست، مهم اینی که من باید به وصیت پدرم عمل کنم، همین و اما شاهزاده خانم دوم وقتی شنید که همسر آیندش یه مرد تاجر ثروتمنده خوشحال شد و با خودش گفت: ها من انتظار بدتر از این رو داشتم و بنابراین به ازدواج با تاجر رضایت داد و جشن عروسی اونا هم به خوبی و خوشی برگزار شد بعد از ازدواج شاهزاده خانم دوم نوبت به ازدواج جولیانا کوچکترین شاهزاده خانوم قصد رسید پادشاه جوان در مورد اونم مثل دو خواهر دیگه شمل کرد به حیات قصد رفت و گل روزی چید و اون رو توی خیابون انداخت و باز به نگهبان قصد گفت که گل رو زیر نظر بگیره و هر کسی اون رو برداشت و اون رو به قصر بیاره ساعتی گذشت و کسی به طرف گل نرفت تا اینکه دورگرد بیچاره جند پوشی که چهره‌ی زشت و لباسای کثیف و کهنه به تن داشت، گل رو دید و اون رو برداشت و میون دو لبش گذاشت نگهبان که انتظار دیدن چنین ای رو نداشت با ناراحتی گفت افتضاح شد افتضاح بیچاره شاهزاده جولیانا عجب بد شنس و بد اقباله واقعا حیف شد حیف اما با وجود این از دستور پادشاه جوون سرپیچی نکرد و به طرف مرد دورگر رفت و گفت پادشاه میخواد شما رو ببینه مرد بیچاره با ناباوری عقب عقب رفت نگهبان در غصت نگاهی به لباس های کهنه و دمپایی های پاره اون انداخت و گفت دنبال من بیا پادشاه منتظرتونه مرد بیچاره با تعجب و وحشت دنبال نگهبان غصت برافتاد اونا از پله های مرمرین بالا رفتن و وارد به شدن پادشاه با دیدن مرد دورگرد وحشت کرد و به تندی از اون پرسید تو؟ تو اون گل روز رو برداشتی؟ مرد دورگرد با ترس جواب داد اه اه اه بله بله قربان اما منظور بدی نداشتم منو ببخشید قربان معذرت میخوام پادشاه جوان فکری کرده و گفت آه. تو رو به شرطی میبخشم که با خواهرم شاهزاده جولیانا جوان ازدواج کنی آیا حاضری مرد دورگرد با لکنت زبون گفت: جناب ش... شما هم مثل دیگران قصد مسخره کردن منو دارین. پادشاه جوان گفت: نه، ابدا و مجبور شد ماجرای وصیت پدرش رو برای مرد دورگرد تعریف کنه. مرد دورگرد از این ازدواج تفره رفت و گفت: قربان من به وصیت پدرتون پادشاه بزرگی ایتالیا احترام میذارم ولی ولی من خیلی فقیر زشتم و تازه میبینین که از یک پا هم معلولم و نمیتونم به راحتی راه برم من حق دارم شاهزاده خانم جوون هرگز نمیتونه با کسی مثل من زندگی کنه پادشاه جوان با حسرت گفت بله برای جولیا سخته که با کسی مثل تو زنده کنه. ولی من چاره ای ندارم و باید به وصیت پدرم عمل کنم. مرد دورگرد گفت آلی چناب حالا که اینطور مقدر شده اجازه بدین شاهزاده خانوم بدونه که با چه کسی ازدواج میکنه. من مرد فقیری هم که به سختی میتونه غذای خودش رو تأمین کنه. باور کنین. شاهزاده ای به این زیبایی و مقام از سر من زیاد قربان و اما بشنوید از شاهزاده جولیانا. شاهزاده یه بیچاره وقتی شنید که قراره با یه دورگرد فقیر رو ندار ازدواج کنه خیلی رمگین شد. خیلی. ولی به احترام وسیعت پدر چیزی نگفته و به ازدواج با مرد دورگرد رضایت داد. پادشاه جوون هم از این ازدواج ناراحت بود و برای خوهر کوچیکش کلی گریه کرد و جشن عروسی قمنگیزی برگذار شد جولیانا بعد از ازدواج با مرد دورگرد همراه اون به کلبه فقیرانی اون در بالای تپه رفت. در اونجا مادر زشت و قرغروی مرد دورگرد در انتظار اومدن عروسش بود پیرزن با دیدن جولیانا بون گفت آیدو خرم اینجا جای لباس های زیبا و گرون قیمت نیسته ها؟ هستی که هستی؟ و بعد به جولیانا لباس های کهنه و پار پوره و کفچای چوبی داد اون پیرزن شاهزاده جولیانا رو مجبور کرد که بسابه، بشوره و بدوزه وصله بزنه و به شوهر معلولش که همون مرد دور گرد بود برسه جولیانا که به زندگی اینچنینی عادت نداشت فقط گریه میکرد ولی نمیتونست شکایتی بر زبان بیاره تنها دلخوشی شاهزاده جولیانا رؤیاهای زیبایی بود که شبها میدی جولیانا شبی خواب دید که در قصری بزرگ، گرم و روشن، دور و برش پر از آدمهایین که آماده خدمت به اونن، براش آواز می‌خونن و اونو سرگر سرگرم می‌کنن. جولیانا لباس‌های زیبا و فاخر به تن داره و به موهاش جواهر زده. روی میز هم پر بود از غذاهای خوشمزه. اونجا همه خوشحال بودن. جولیانا وقتی از خواب بیدار شد همه اونچه رو که در خواب دیده بود برای همسرش تعریف کرد اما مرد دورگرد فقط به همسرش جولیانا گفت آه رویا رویا دیگه اون فکر نکن تو باید به کارات برسی و از واقعیت فرار نکنی آه این رویاها رو رها کن شب بعد شاهزاده جولیانا باز هم خواب دید در قصر زیبایی زندگی میکنه ولی صبح که از خواب بیدار شد دیگه از اون کلبه فقیرانه روی تپه خبری نبود اون توی اتاق خوابی زیبا بود خدمتکارها در گوشه اتاق به انتظار دستور اون ایستاده بودند جولیانا وقتی به اتاق دیگه رفت دید سحومه مفصلی روی میز برای اون تدارک دیده شده جولیانا دستور داد فوراً برای من درشکه آماده کنین و در عرض یه چشم هم کارسکی بزرگ طلایی و عصب سفید مقابل اون ایستاده بودن شاهزاده جولیانا سوار شد و به طرف غصر برادرش رفت و در اونجا پادشاه جوان که همون برادر جولیانا بود با دیدن جولیانا پرسید جولیانا تو اینجا چیکار کار میکنی؟ این کارسکی تلایی مگه؟ مگه همسرتو ثروتمند شده؟ جولیانا چیزی از همسرش به برادر نگفت اونجا توی قصر همه بودن اونا خوردند و نوشیدند و شادی کردند اما قبل از اون که مهمونی تموم بشه یه نفر به سقف طلایی نگاه کرد سوراخی توی سقف بود و در اون سوراخ مرد جند پوشی نشسته بود و با لبخند به اون نگاه میکرد. اون نفر فریاد زد اونجا رو نگاه کنین یه جنبه اونجا است. با گفتن این جمله در عرض یه چشم هم زدن قصر و مهمونا و همه چیز ناپدید شدن در حالی که شاهزاده جلیانا کنار بخاری کلبه نشسته بعد از این ماجرا چند هفته بعد دوباره جولیانا همون رویا رو دید و دوباره صبح اون رو برای همسرش تعریف کرد ولی باز همسرش گفت تو همیشه در رویایی دیگه به اون فکر نکن حالا کتم رو بگیر و برام وصله کن که نزدیک از کهانگی تکه تکه بشه درست همون شب شاهزاده جولیانا دوباره به رویا رفت و به قصر زیبا برگشت با خدمتکارانی که منتظرش بودن جولیانا با لباسهای جواهر به خدمتکارها دستور داد تا باز همون یه طلایی رو براش آماده کنن تا باز هم به دیدن برادرش و بقیه ی خیشاوندانش بره دوباره میهمانی باشکوه موسیقی گوش نباز همه چیز درست مثل قبل اما وقتی اونا از دور میز غذا بلند شدن یه نفر چشمش به سخف طلایی افتاد و فریاد زد آه خدایا اون جنده پوش رو نگاه کنین و باز با گفتن این جمله در عرض یه چشم هم زدن همه چیز نابدید شد شاهزاده دوباره به همون کلبه یه روی تپه برگشت در حالی که داشت جوراب های مادر شوهرش رو وصله می زد. وقتی همسرش به خونه برگشت جولیانا همه چیز رو براش تعریف کرد و همسرش باز گفت آ رویا رویا رویا رو یا تمام زندگیت شده رویا بافی ببینم غذای من آماده است من به اندازه یه ببر گرسنم. و جولیانا دیگه چیزی نگفت و غذای هم سرش اومده کرد شب بعد باز هم جولیانا همون رو دید ولی این بار قبل از اینکه مهمونا مهمون ها بشینند جولیانا اونا رو جمع کرد و گفت دوستان من شاد باشید لذت ببرید خونه ی من و مثل خونه خودتون بدونیم فقط یه چیز ممنوعه هیچ کدوم از شما حق نداره کلمه ی پوش رو به زبون بیاره همه خوردند و نوشیدند و شادی کردند و در تمام مدت موسیقی دل نواز بروشون نواخته میشد. یه دفعه یکی از مهمونا نگاهش به سقف طلایی افتاد و متوجه مرد ژندهپوش شد که اونجا نشسته بود و از اون بالا به با اونا نگاه میکرد. کلمه ژندهپوش نوک زبونش اومد اما حرفش رو خورد و چیزی نگفت. درست در همون موقع شاهزاده جولیانا نگاهش به سوراخ سقف افتاد و قلبش پر از قصه شد و گفت: مرد بیچاره اون چه همسر خوبیه و من چقدر اونو با شکایت هم ناراحت کردم کاش اونم در میون ما بود و از این مهمونی لذت میبرد خب شما فکر میکنین باز هم همه چیز ناپدید شدن نه مهمونا وارد سالن بزرگی شدن که در انتهاش دو تخت طلا بود که روی یکی از اونا شاهزادهی جوون و خوش قیافه با لباسهای مخمل و جواهر نشون نشسته بود همه از دیدن اون شگفت زده بودن. شاهزاده جوون بلند شده گفت: "مهمانان عزیز، خوش اومدین. وقتی من در سفر بودم، همسرم شاهزاده جولیانا از شما پذیرایی کرده و شما رو سرگرم کرده. امیدوارم حالا که من اینجا هستم، شما رو شادتر کنم." بعد دست همسرش جولیانا رو گرفت و اون رو, رو روی تختی که کنارش بود نشوند. در اصل اون جندپوش پوش و دورگرد نبود بلکه شاهزاده فلوریو پسر پادشاه پرتغال بود و زن جادوگری اون رو تلسم کرده بود چون پادشاه جادوگر رو از اون سرزمین بیرون کرده بود این تلسم وقتی شکسته میشد که شاهزاده ای اون رو با وجود فقر و چهره زشتش دوست بداره و حالا جولیانا این تلسم رو زمانی که برای اون دلسوزی کرده بود شکست. اما حالا مادر شاهزاده چی میشه؟ اون اجوزه مادر واقعیش نبود. بلکه جادوگری بود که شاهزاده رو تلسم کرده بود و از بدبختی اون خوشحال بود. و با شکستن تلسم هم دیگه در اونجا نبود. شاهزاده فلوریو و شاهزاده جولیانا به خونهشون برگشتن و به خوبی و خوشی زندگی کردند اما قصری که اون مهمونی های جادویی در اون برگزار می‌شد دیگه بعد از اون هرگز دیده نشد افسانی راز گل روز رو براتون کردم از گنجینه ادبیات شفاهی مردمان سرزمین ایتالیا برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم ایتالیا گردآوری آن مکدانل و با ترجمه از رزوان خورمیان افسانه ها از زندگی مردم مایه گرفتن، ریشه در اون دارند و تبلور رنج، تجربه، آرزوها و آرمونهای مردمی که خود خالق و سازنده اصلی این افسانه ها هستند بنابراین افسانه‌ها ارزشمند و گرامبهان و برای تک تک ما ما لذت سرگرمی عبرت و تجربه های غنی هند. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح پور ویراستار الهام اشجع اجرا مهران دوستی صدابردار ناصر سلیمانی تهیه کننده زهرا دله زاده تا افسانه دیگر بدرود